اولاً بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله الرحمن لله الله رسول الله ال در مجموعه روایاتی که در باب رعش وارد شده که در کتب ما هم در یک جا نیامده بعضی اجای دیگه آمده با کشکی یک جا میوردن راجع به که در باب حیوب نهر شده دیروز برزشو خوندیم در این کتاب وستاقیم جامله حادی در جلد 23 در اون وسایل من دلن فاسطه وسایل بخونم چون خوبی وسایل اینه که در جلد 12 چاپ قدیم همه عبابر ایو بشه هم همه همه این بار معیق تصم یعنی حضورات یه جلد راحت اینجا دو جلد و در این باب نوح عبابر ایو یک مقدار از است که به ذهن ما تطریق غشت که اصلا غشت مثلا امام فموز ادارال یا ام انطلاب است که اماما میخوان یک زابطه ای رو برای غشت بیان بکنم و اون زابطه اینه که در باب سطر این است که اون شیعه مخشوش دیده نشه یک نوع تصدر باشه مثلا شما اون گندم بد رو زیر گذاشتیم گندم خوب رو بالا گذاشتیم خورمای خوب رو بالا گذاشتیم الان تو بازار توی بازاری میبه مخصوصا بعد از این وقتی ما برای ازیه بود که گوجفنگی خیلی گوجفنگی پشنگی ها بود اصلا برندازه 10 سانت الان کلش مثلا 3 سانت 10 سانت 10 سانت تماما سبز بود تماما نزف. دقیقا نصفش تماما سبز سبز و هم چینده بود بالاشم پرم درست نشه حالا این خوب مثل آقا بارزه قشه اما اگر رویت بشه ازار روی یا جمیه هم البته این متاسرکانه بازار ما من این وقتی هم عرض کردم حالا به رفت خطیقی خودمون ما هم بشه کتابی هستمانی نفر اینگریسی میشه که ماست کارلک به اصطلاب نام عضو تحصیل که شاه مخمد و قرآن سال خوبیه بعد نیست توفارد هم ترجم خیلی وقتی شد پنجا سال پ شون شما اگر یه تو بازار استانبول وقت چون مسیری ها درگی ها با اسلام آشنا چون ترکی ترکیه و پایفت ترکیه و مظهر اسلام عثمانی بوده عثمانی ها میگه شما اگه از مسلمان جنس بخریم فیاسون راحت باشه که تا آخذش یک نواخده اما اگه یک یک یک بودی بخریم به بشه زادش یک جور پایدش جوری <تصفح> خیلی عجیبان در خند ایجوه ها می واقعا یه تغییر اعجیده درشونی اگر از مسلمان هم این مسلمان باخیرین جنسا شکل نباید اما اگر زیر یکودی بخارن این بالا یه جور پایین جور دیگریه یعنی کتاب این تو تصویل میکن حالای که کماکان این هم راجع به این روایت به اصطلاح محمد ابن مسلم از کردم یه روایت دیگری هم از حلبی که خب یه مقداری حالان سندش درسته اون دو باید دیگر حلبی بود که مشکل به جرمان حلبی سوال میکنه که این تر میکنه اما تر کردن کاری میکنه بعضی وقتا دیدیم مثلا خیال میخوام به توسنه بعضی میبجاد با یه حوله تر اینها رو به اصاب دست کاری میکنن میگه که فقط جنسش به اصطلاح بروز و زهور پیدا میکنه نه اینکه وزنش زیاد بشه یا نه اینکه یک ای بی رو مخفی میکنه یک مظهر مثلا سیب رو بیاد همسو که از درخت کنده بگذاره یا هر بیاد باید دستمال تر دور برش محتفا کنه حریز بکنه, بکنه قشنگی دیده بشه امام فرمان امکان بی لا لا اگر راه اصلاحش تمینه و لا یون فقوق غیروم من غیرمی التنسفیه زیاده هم، بحث زیادی حجنش نباشه فلا بس. به این انکان این نما یه قشبه المسلمی فلا يصلح. از کردید یسله به معنای در اینجا که معنای حرامه الا این اینکه آیا مراد بی حرامه لا یسله البی یا لا یسله این حمل یعنی تر کردن یب اللهو به معنای تر کردن و من توضیحاتی رو چند بار عرض کردم یک متعارفی بوده در اون زمان در غمه دوم فوقهای عهد سنت هم دارن و اونی که اگر یک مطلب یه حکمی به سنت رسول الله ثابت شده بود احتراماً میگوستن پیح با اون اصلا این اصطلاحی بود اونی که در قرآن بود یحرم میگوستن انده ما حرام علیکمون ما هم داریم در واقعی چون معمیزمون شده بس خنده‌نازج ما واقع حال انهر حرام محرملا فی کتابه اون که تعبیر حرام رو مغیر بودن به خصوص و حرام الهی ولیکن مسخنت تلف کارهایی رو صلاح نمیدونن ما هم این جور چیزهایی که حرمتش به سنت ثابت شده چون مسئله غصب حرمتش به سنت ثابت شده در مقابل تجارت انطراس در مقابل افو بل اوتس همشته دیگه چون حرمت هشت سنت ثابت شده اینا خیلی مغیر بودن که این اصطلاحات و مراعات بکنن مخواستم بگم حرامه نیمونه خیحه مداله مخواستم لایسله لایسله این یه لایسله به معنای حرمته نه این لایسله منه کراه هم آخرین رواتی داریم این با ایشون نقل کردن از مرحوم شیخ توصی از احمد بن محمد باذری که مراد بدر بن اس احمد محمد اشعری است حالا یا از کتابش مستقیما یا مسئله‌ای مستقیم مستقی که ایشون ذکر کرده به نظر من احمد بن محمد اگه باشه سه مسئله اشتمانا درش باشه عنه ابن ابن ابی نصر از مرحوم بلندی که سررس ما کرانه مرحوم بزنتی کتاب محروفی رو داره و این کتابش رو ما نسخ متعددی از کتابی ایشان داریم از کتاب مرحوم بزنتی. یک نسخه نصبت معروفش همین نسخه که مرحوم بزنطی مرحوم عشعری نحر کرده نسخه دیگه هم در قوم بوده از این کتاب ایشان از کتاب مرموم وزنطی لکن این نسخه خوبش همین نسخه هست که ایشون ارام رختم اشعری و چیزام هست یعنی سحل ابن زیادم هست کلری مقدار زیادی شد رو از سحل ابن زیاد ویستو برگر به و این نسخه تقریبا یا حالا یا همش یا معظم این نسخه احمد اشعری هم در کتاب قربل اسناد آمده حالا این تیکش نگامده بلا تو قربل اصناد این چیز وجود داره این قربل اصناد از احمد اشعری از بزنطی خوبه راضی با این کتاب بزنطی هم بعدی از جهاد هست باید بررسی به شاید من چون اینجا جاش نیست یک نخواه که تو این کتاب هست که شاید نکاته لطیفی باشه برای بدرسیش اند آبود ابن سرحان نه سرحان به سینی سین هم نه سرحان یا سرحان در لعات عرم گویه این درسمون در لعات عرم شیر و گرب و سگ و نخ و چار اسمی زید کلب و نمیدون کلیگ و اسد و وسید و الاخوی اند آبود سرحان یا سرحان اند آبی عبدالله عليه السلام حالکان من ایجرابان من مسک اهداه ما رفت کنم آخری آخر یابسو بعد یوم تر فروختم من خوشی و خوشکه رو نمی خریدن. بعد گفتم به حضرت که آیا من این رو تر بکنم از این خبر به این خوش بوده من ترش کردم با آب تر کردم نه این آب طبیعی خودش بشه قال ایسلا فقلتا ایسلا هولی ان اوندیه ها قال لا دست کار نکنیم تو قال ندهی توی فرمه احلم تو هم آمن خودم آفده این اضافه کرده و قال لا برسه و احلم تو که ما اگر آبزدن به یک شیب موجه به تغییرات درو بشه اون جایز نیست اما اگر تغییرات ایجاد نکنه فقط اون چیزی که از رو زیبا جلوه بده اون اشتال نده این هم به اصطلاح، روایاتی که در این جهت به اصطلاح وجود داره و روایت دیگری هم هست که در باب روغن و توش به اصطلاح روبی بوده از اون روغن تحنیشین بوده جرد داشته که آیا رد بکنه اما تو اون روایت تعبیر به چیز نشده تعبیر به خش نیومده داره که لحیم نیسته و حوزاله که مثلا ردش بکنه اما تحبیر به قشم مجموعه روایاتی بود که من عرض کردم در مسادر ما راجع به قش آمده از تا اینجا اوشن شد که در صحیح ما از کافی و غیر کافی هم راجع به کلیه بحث قش آمده با تحبیر من و شناف لیسه ملنا. هم در مسادر ما که این در مسادر آمده نبود چند تا رواید آمده که ازش استفاده بحث محنای غشت میشه کرد که غشت در حقیقت چیه این واجه به مجموعه روایاتی که ما داریم بعد از مجموعه روایت ما متعرض روایت احل سنت شدیم رسول الله و گفتیم بعد روایت شیعهی که از رسول الله بخونیم روایت احل سنت بخوندیم. یک روایتشون نسبتا مهم بود که هم بودم که دیم کتاب برای روایت اون روایت من هنوز شبیهون توی اذهان ما هم نیومده. که رو در آن یکی بود که کتاب معروفش نبود. غیر معروفو در منبعش نیست میگه من قشنا فلیس مننا دیگون شده ما معنا ما قول اون فلیس مننا قال یعنی ليس مثلنا. کعبیو شیعه. این من دیگه غیر این مورد در کتب اهل نه در شیعه نیگه که حدیث من قشنا فلیس مننا رو پسیل کرده باشه از بعضی ازش فهمیدن ریس منع یعنی مسلمانی بعضی فهمیدن یعنی کار حرامی انجام داده نهی که از اسلام کارش باشه و باز هم عرض کردن در مسادر احل سندر دیدن در ازم تو سه یه بود که خودی. و در مسادر شیعه نبود لیس منعی منقشه لیس منعی لیس منعی هم داریم و ما در در خود قرآن و در خود روایات احکام رو داریم که به حضور زهای خطاب بر رسول الله و که مجرد خطاب بیشونه لیکن احکام عمومیه مثل یا آیوه نبی خطاب بر رسول الله لیکن و در سنه هم در یکون معیقی حقیقت قدس کسیم خود با من به اصطلاح خانه های خداسته پاکی باشه از رو کنند قرارتا به هر حال محیه آمده و مران اصل سنت رسولله هست لیسه منی من هم اینجا آمده لفه مشهورترش لیسه منی یک مثلم لیسه به مسلم داریم اما من این لیسه مسلم رو فعلا ظاهرا تو اونکه که توی ما نهره شده تو مسادر آمده حالا برگردیم به دقلهایی که در مسادر ما از روایات رسول الله نحرف شده و از روایات رسول این ها در همون جد 22 جامعه والا احادیث صفحه 436 14 45 از اول مایو کسند روشند نشد برمنکی ليس مثل ما این چی نفهم دمین چی جور شده که این مهمه رو مثل ما این باب 45 ادهی از رواستش که مرموط برایات ما بود خوندیم موندش رواست نبریتش که نخوندیم که حالا تکیم میکنیم حدیث شماره دو در این باب از دعایم نقل کرده روغینا انجعفر ابن محمد ایشون از حتماسی اینجا احتمال در روغینا هم باشه ما شه حالا روغینا میخوندیم که در خصوص دعایم شون با این کتاب مراجعه که به این کتاب ایزاهی ایشان کردیم آخه روینا این ارز کن هم سه جور قراعت بوده روینا بوده و روینا روینا از بکره یعنی جوئلنا راوی رواس لحاظر حدیث جعلونا یا جعلونی راوی هم لحاظر حدیث بیا رویتو بی یعنی من تنها این این اینه که اگر حدیثی رو با کسی دیگه شنیده نامیاره تنها باشه رویتو بگه در این کتاب شهر صدو و مکان فقط رویتو اونجا رویتو دارم اون وقت از کلی متعارفه در قلمای حدیث رویناس یا رویتو متعارفش این یعنی من این رو بر اون طریقی که از یا براید یا سما به حالا مثل اجازه مناوله هر بوده با استاد انجام دادم ایشون اجازه رویتو من دادم رووینا یعنی اجازه ی روایت بما داده شد بگیم جهت میخویم رووینا استفر رووینا این رو رو این ای جعلون راوین یا جعلون راوین روات را رو حدیث یا جعلون راوین را حضر حدیثی ولکه بعد که به کتاب علی قیزا نوشه خود قاضی نوع من مراجعه کردیم ایشان مقیده به استقاعت حدیثی نیست متاسفانه یعنی بگه مثلا اخبرنی اجازنی نیست نیستسانه سال داره صاد خوبی در اختدار شده زبان خودش، که معیت به اصطلاح نیست چون معیل به اصطلاح نیست مناس تر که یعنی اون رو اینا. چون در چند جازاره و ای ها برایین ها مرده وشک مراجع خاامجیشه عنی موردرا به نحو به اجازه بوده لذا ما تا حالا عبارتی روینا می کنید دوی اصطلاح علمی رویناست اما به لحاظه خود شخص قاضی نعمان شد دیدیم محیط نیست به اصطلاح علمی به که از نقاط ایشانه لذا به نظرم چون عبارتیشان بهتری موشه را رینا بکنیم این جعفرن محمد جعفرن محمد این رسول الله نه حالا این جو سندی که در کتاب دعایم آمده برمیگرده بی یکی از این نسری که از امام سالر شده، مثل کتاب سکونی مثل کتاب جهفری آرستان اینطور طور انجر چون ما در کتاب دائم به ذهن اون اینجور میاد اون جایی که میگه انعوییم و انعوییم احتمالا کتابا قرداری رسونت باشه اما مثل اینجا که روی روینا انجر رو محمد انعبیه انعبائه همه امیر و مثلا این باید یا مثلا رازه سکونی بوده یکی از این مسانیدی که به امام سادر نسبت شده مصند یعنی روایات که امام سادر بیه دستانی علیان آبایی علیان قابل رسول مصندی من در حال دنید در کتاب هرزایی و سوننده احکام باشه الان این روایات در اختیار ما نیست یعنی الان در مسادر ما ما این روایت نداریم بلکه احتمال خردی داره که تا هم کتاب سکونی باشه احتمالش شده خردی یا کتاب جهتری یاد باشه لیکن ما الان خود ما این روایت نه از جهتری داریم و نه از کتاب سکونی داریم این را بگیم ارس کنم که ان رسول الله صلی الله علیه آله نه ان الخلاوت و الخدیعت و القشن احتمال میدن به عباراتش سکنون بکنه شاید تو کتاب سکنون دیگه ما البته خدی خلاوه خدیعه به لسان به قول لطیفه یعنی خریداده هم سرش کلابه داشته ارض در من وقتی که عبارات کنزول امانا پوندین خصوص خلاوه تو رسول رسولله هست و حتی داره که نفری بوده حیانه بمونبذ منبذه و حیانه سنگی که سنگی به سرش که میگیش بوده کی کیجی داشته از دست به شهر و از تا ما آمله گول نزنی من گول زدنی تو پاهم نباش و تا سه روز رو داره اگر جنس بیگوزه دست بچه ها بیان در این خلابه هست در اصطلاح روایات به کار بودش حدیث شماره سه به اسنادی از سباب اعمال صدوق به اسنادی متقدم در باب فلان از کنم من یک بحثی بوده که نیشه حدیث خیلی طولانی بوده مثلا فصل به 20 تا 30 تا 40 باب مروض می شده صاحب و این راه رو پیشه اولین بار که یک قسمت حدیث میاره سند رو اونجا بیاره مثلا اولین بار توی تا تا حالت مثلا نبار سند رو اونجا بیاره مثلا چهل موضوع در بقیه موضوعه در 39 تایزی یه حواله به اونجا می ولی به اصنان در باب فلان راهی هم سال وسائل اصناد در آخر کتاب آورده مثلا سال وسائل گذرش به اسنادی یه حل آتی تحبیر سال وسائل آتی مرادش از ال آتی یعنی در آخر وسائل خاتمه وسائل اونجایی که تروب شیخ صدرونه میکنه سنده اونجا هم این توضیحات من عرض کردم وسائل اینطوریه من ترتیب وسائل خدمتون میده در جامعه آل یا آتی نداره همه یک جامل احادیست چون یکی از مشکلات جامل احادیست مثل وسائل یک خاتمه یا پوائی دیرون نداره یه مقدار پوائید و اجازه رو در اول داره که منصور است با مرموهای بروجیدی و خدا بروجیدی در اول کتاب چرا آمده یه و اما خاتمه ای مثل وسائل چون مسائل در خاتمه حسی دور رجال هم داره خاتمه وسائل یک دور رجال تراغ هم داره خیلی نکات لسیف داره توضیح رایی به طلاق شیخ صدوق و شیخ توسی نام داره دوازده تا پایده هستی ما تو بحث توضیح خبروانه اخیقا چند تا پایده شو متحرس شده. به و هرمان یک لباس طولانی خیلی هم طولانی در باب به اصطلاح جمعه از احکام عنوانش اینه که ابن عباس و ابو حریب ابن عباس کشان در 11 ساله بوده ابو حریب کسان بود مندینه بود نبود. قالا خطبنا رسول الله وحی آخر خطبت خطبنا مدینه درمون این دور روایات که مثل امشه افادی نهار بکنم خیلی بعیده علایه حاله ادعایی شده که یک خطبه این خطبه را تو ما اولا نگاه می این مثل این بیمونه که یک نفری گرسه 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 80 تا روایاتی گرسه و هم چستمونده هم, هم براش درست کرده که خرصت بنا رسول الله به مندینه که جعلی این هیئت ترکیبی جعلی مفتاده که مرکلا قاید به تنهی حساب بشن علایه حاله سندش هم تردن به حدی شمیه سند زیادت جامعه از این موقعی مستنده زیاده مرمون شیخ تلسی تلو از استادش از محمد نجبر حسابی از یک این شهر زنام محلی برادرداره محلی معروف که اخیران ما ترده شده که اصفت کنی دیگه از وقت سنیه همهش این همشون تا هم تا تمام اونا هست در نگاه بکنم ارز خود ایشان که این اهل سنت متحمل و بدنا وقت فقرار از این خطفه در جا بازن هم در اونجا یعنی امرکنه توی جلد سه در باقی احکام مریض و خصمیت و نماز محیت اونجا اونجا داره منقش مسلمن فی بی این او فل فلی سمننا این درسته مسادر ما حالا هم تو زیدن نیست که در این حدیث با این اهل سنت دیده باشن احتمال میدن که که در این موضوعاتشون باشن اگر کسی از آیون راشته باشه به این چیز از مسادر اهل سنت مثلا یخشرا معلی این عبارت یخشرا معلی یهود رو بزنه احتمال میدم، نهایتا مراجعه نکردن روزش مراجعه کنم. احتمال میدم در موضوعات اهل سنت این حدیث ذکر شده باشه و یوشا سلام علی یهود يوم القیامه این یوشا سلام علی یهود در روایت دیگه نیدم که اهل نیدیم که اینجا آمده میراث های ما از اهل سنت این هم به ادعای قول از با که جسم چون فیان یوم نهر بارز فرد و غش و خدیعه و مکر و حیله و خریب و پاریدشگر لذا بود کلوشین یهود الاسل یه تو الاسل اولان و آخر بود و اوسفان و افران و کلوشین لاحبان به جوهره اول و مختصمان به آخر اول و اول یعنی هر خود خوده ای پیدا بشه ریشتش من یهودی یهود چرا من الیهود یهود من پیامه لذایی چین که قشن باید و لذت من پشل ف... دادن همه پششاناسا لیتو میتونم این و هرطور آدمان ما نداریم. که امتدی این بحث فرنش رو در بابی ایمان و کفرو بوده این رو بابی ایمان و, بابی ایمان و بیشتر بیشتر نخورد. لکه توی اول که روایت معروف من رشنا پلیسی من نه ملتی لو مسلمان. و این رو که الان من خوندم حالا اگه ما خفه من اندوسید خراب میشلوشی. توی اهل احل سالن که از کنزال آمار خوندی اونجا هم لیسته و مسلم ناییده حالا این ما این جدا کردیم برای همین جدا کردیم که گاری و یه متونی از روایات پیش شما میاد که اینها پیش اونها هم قابل قبول نیست بل این یکی لنمومن بشتن ناس سلیسته و مسلم این از تیکه که نیامده باز در همین خطبه که طولانیست در صفحه بعدش و من با فی قلبی قشم در اخیه المسلم باته فیلسقت الله تعالی این قش اینجا اون قشش ما نیست این خیلی چون یکی دیگر هم دیگری هم داریم که خوندین از دینا النصیحه. حقیقت دید اون صفا و سمینیت و اخلاص و صداقت نصیحه در اینجا از نصحه یعنی انسان اون واقعیت رو حفظ بکنه، و نصد برزر مومنش اون چه در قلب بشه بگیه من با قلبیه قلبی قشن کلمه قش رو صاحبین کتابی کرد، نه این نیست مراد قشن لأخی المسلم با ثبتی صحت الله مراده از قش در مقابل نصیحت نه مورد از قش اون حصا جنس رو مخلوط کردن کالا رو مخلوط کردن این دستی بو نداریم و اسبه که داره همی شبش در سخت اللهیز روزش هم همونده و هو فی سخت الله حتی یتوب و یبجه. و رهن مات کذاره اگر در قلبش تفا و سمینیت یعنی نه در قلبش داری که در مسلمانش مکه و حیله و و هر راهی رو مخواد پیدا بکنه برای مکه و ما مات علاقه به دین الاسلام این هم الان یادم نمید سن مقال رسول الله الا من قشع مسلمان این درسته من قشع مسلمان قالها سلام من باز بعد از دو سه مانقشه اخاهول مسلم نزعله همونو برکت رستگه و افسد علیه مایشتم و و کلاهو ایلانسته این افسد علیه مایشتم ممکن است بر که بکنه میکنم علیه میکنه ظاهرم از افصاده یه اموالش مبارک نیست زندگیش مبارک نیست اموالی رو که از راه قشن دست میاره این است که در راه حرام به مصرف میشه با مصرف مالی انسان هر جورو باشه مصرفش هم تقه همونه از راه حلال آمده تو راه مصرف میشه از راه بد آمده تو راه بد هم مصرف میشه علایه حالا این یک حدیثیست که مرموم سلو در اخبار ا در ثواب اعمال ورده و یکی که مقدارشم در همه شمعه هم مرموم دیگری در هر آمدین رو اینجا ننشده اونجای این لاجه به این حدیث ابن عباس روی برده که احسافا هم طریقش رو اوشندیست هم متونش انفراد داره قبولش و شاید سر این که صدور هم هیچ جزی یعنی این قسمت از را تو فقیه نه مال همین. صادوقی بود. اس قاعده این متون روایت شواهد نداره. بلده در حقیقت نه واض است، فقط هم حساب ثواب اعمالو عقاب اعمالو کرد. حدیث دیگه‌ای که چند بار صحبت کردیم خیلی طولانی بعنوان مناهل نبی. در واقع ایشون یه هم و حدیث مناهل نبی، حدیث مناهل نبی رو سالو اخره در جلد 4 مورد برزه قام یه بابی داره مناهل نبی نه هم نبی ها هنکز و, هنکز و توضیح دادیم که هم روایت ضعیف هست و هم ظاهرن جلید و حیث مجموعه شخصه جلید دادیم این روایت رو یک مقدارش رو در کتاب فقیه هم ارده اما مضمون این روایت یک قسمت های شوان قبلی یکیه لَن نَغَشَّ مُسْلِمًا فِي شِرَاءِ وَبَيْنَ خَلِيسٍ مِنَّا إيه داره و نهل هم این از اون محنی که خود خلوق واسمون فردا نغ یکم بهتره چون یهود اگر شود خلق به راست در این مسئله الا ارغوا لنا واسطه قلبیه فشن در اخیر وصلت واسطه فی صفات الله و در کمالک خطا یتو این مسئله هم تو اون متن بود و لکن جای دیگه نداریم اصفات این مطلب هست مشکلی البته این مطلب اجمالا درست چون داریم که از دین نصیهی در مقابل دین نصیحت که ان شاء الله در کتاب فریح داره و قال صل الله علی وله بحث کردیم گفتن چونه یه مراد ثابتی نه مراد بجتنه ثابتی لیت من قش مسلمن داریم به این محد مقدم نه من قش مسلمن فلیس مننا و قال من, من قش المسلمین حشبه محل یهود یوم القيامه لعنه هم اقش و ناس للمسلمین یک جا خرق داره یک ناس داره واحرش نقل معنا باشه این هم عرض در کتاب اعمالی سالون آمده و در تقیه هم به عنوان جامعه آمده به عنوان نوی این یک تیکشه تو جلد سرمان تو ما بیوم آورده یه تیکشه جدا آورده پس کل روایت یه جا آورده بعد در تیکه جدا آورده مرحوم صاحب این کتاب جامع آحادیس شماره دیگه بذاره شما دیست این همون باز روایت دیگری از مرحوم صدوب رضوان الله تعالی علی از تحییفت و رضا نهاره میکنه نوشته به اصناد فلان این اسناد فلان میکنه. او او ما فلان جزه کنگی نمیکنه. نمی کنه قال قال رسول الله لیس مننا من قش مسلمان او زره و او ماکره این لیس مننا من قش مسلمان او زره و او ماکره اینم در کتب اهل سنت داره کن این من انصافا در کتب اهل سنت آمده و صدوق به عنوان حضرت رضا آورده صحیفت و رضا کتابیست که مرمون صدوق نرم میکنه که افراد از امام رضا مصنعه نرمید لضایی شد در جا چه مصنعه صحیفت و رضا به یعنی آبایی همه نبیر مثله راستی اون تو صحیفت و است. و اصولاً از پیردن اون چیزی رو هم که صدوق نرم کردن این همون صحیفت و رضا و نیست حدودا مارکر سعی کرده زود چیزی نیست، نه اصلا کدیه حدس همونه. به عبارت نوکروی، اما همون از حدود سعی کرده حالا یا همهش الان به چüzه از که همهش نموده باشه. بعضیشها او وجود دیگه از اونا خوارده، بعضیشها اونا خوارده که صاحبی از که تا که به هیچ شرایط زدم هم از جام بگیره. اونا خوارده منوشی. وقت این آقای بزرگوار دو تماس داشتی، یکی اون و یکی از کتاب سحیفتالرزا هر دو یکی همین شوام نکنن هر دو سحیفتالرزا و, و سحیفت اسم علم نیست اسم آمه نامی کتابی از حذر کتاب از حذر حذر از کندم این سحیفتالرزا در بعد کتاب احضرتون لحون کراسون یا کراسون انرزا حذر لحون نسکتون انرزا لحون جزون انرزا لحون مجموع احاضیت انرزا یا از این تحبیق صحیفت و رضا مصند و رضا من این توابیر مختلف رو در میان کتب های اهل سنت شیعه زیدی ها حرض این کتاب رو سنی شد بیشتر از ما نهار کردن زیدی ها نهار کردن صحیفت و رزا. چون که توضیح داشت گذاشتی تکار نهار خیلی علایه حاله منقش مسلمان او زر رهو این شما در وقتی زلازدار متعرض میشیم شاید زار رهو باشه چون در خفت قد در هر حال این متن ذرهو، ماکرهو و به استفاقه این تو کتب اهل سنت هم آمده از روایت زینب اختاره بود که این هم از رسولا نرسده است که در کتب اهل سنت نهیدین کتاب روایت سکونی بود که از رسول الله هست. این روایت هم به نظر در اهل سنت حالا چیون محصولش زهنمیست نها رسول الله انیو و لبن بل ما للبه ظاهرن مقداره با این مقداره اما در دائم اینجور آمده ان رسول الله انهو نها ان لبن بل ما ادا اولید به لبه لانهو یکون و غشن اما من شابه بولیش رو فلاش علیه پی شوبه هیچ اشکال نداره این مخصوص کردن فی نفس اشکال نداره بلکه را از خواهی کرد بعید نیست اگر مخلوط بکنه و یک ارتکاز و اوفیه باشه یا خودش اعلام بکنه و قیمتش هم مناسب و همون بفروشه شاید مثلا اصلا قشن نباشه مثلا شیر خالص که داده 500 تون شیری که مثلا سی درستش آبه فرض که مثلا 1100 تومن این برداشت تو که آبه 1100 میفروشه. اگر فرض خرید اگر فرض کنیم بخاطرش چه اهمیتی در بازار این انحصار بازاره گویا شیر, شیر, شیر چند هزار بالاتر هست نه شیر خالص. آشی چند هزار دیگه اصلاً. به هر حال ان اگر انحصار بازار این باشه و توی شیر آب بریزه به 1100 تومان بی‌مزه اندازه شاد این قشنگ نباشه. ولیو بیه. این قشنگ نخواهد. چرا؟ چون طبقه همون نرخ شیر مشروع حساب کرده خا... بله اگه 1500 تومن نرخ شیر خالص این غشی اما اگه هزار 10000 تومن نرخ همون شیر شیری شیر که با آبه خودش نرخی داره این طبقه همون نرخ حساب کرده ظاهراً سر نکنه سر رو برای مشکله این هم راجع به حدیث وقتی دعائم این رو نرخ کرده هم رسول الله از اینکه ضاهر هم رسول الله لعن کرد، دیگری پیشش بوده، دلیل کتاب سکونی باشه. چه کتاب سکونی بود؟ بود از جعفران نبی آبایی هم رسول الله نهاهن شو بالبن بالما اذا اريد للبيت. متنشان یک کمی با اون متن سکونی فرق میکنه اگر بگیم امر رسول الله لعن کرد، من است. معناست. لعن او یکون قشن، اما من شابه او و شابه او فلاشه شو به بلکه بعید نیست فلاشه علی اگر بخواد کسی دیگه هم بخوره مگر اینکه نکته دیگه, دیگه باشه فرس مهمان بخواد شیر بیاره و توش آف معلوم نیست این فی نفسه دشت باشه و حرام باشه اگر اینکه مثلا مهمان بدون از حال مهمان یا خیلی داره یا خودسیتی مثلا این مهمان مریضه اگر شیر مشروب بخوره بیشتر میشه. حالتی داره حساسیت پیدا میکنه این بحث دیگری فقط لیش ربهو فقط لیش ربهو تناس نیست بخواید به بچه شده و هم داشتید و توش آم میدهد به بچه شده معروضی اینا هم قشن باشه، مثلا سر قشن باشه نیست و چیزم نیست به اصطلاح حرمتشم روشن نیست از جمله احواضی این حدیثیست که الان این بزرگان ما اصلاح محروم نهارو کردن و طریقشون به کتاب کتاب که از عبی جمیله مفضل ساله سعد اسکاف سعده ابن اسکاف قابل اعتماده عبی جمیله مفضل ابن ساله این خودش کنیز میشوخصه بیاهال جواری بوده تضییف شد عبی جمیل شدن شد شما این نباشه گفتن ای چون بعضی بزرگان مثل این محبوب آداشتن از حال قال مرن نبی فیسوخ المدینه به, تعامل. به تعامل. چرا در بازار تاام می دید، چقدر طعامت خوبه بعد از سیرش خواست و علی فقال ما و این متن در کتب بعد سنت هست احتمالاً شعن نزول این آیه حدیث مبارک هم همین باشه البته اهل سنت هم توی تره اون دیدش بالاش باشه یکی جمع همین همین جمع و غشتنده به که آدم میاد گفتی معلوم شیف غشت این ببایت که ما داریم در کتاب اهل سنت این رسول الله شده البته ببایت شما صنده زعیفه شواهد شوید معایدش ماشه باز در کتاب دامن جعفر محمد سو این دیروز خوندیم اون جلد بیسوسه، دیروز خوندیم یک کاش مرحومه ایشون در بست قشن فقاله حبا قشن و کره اگر خلط هم بکن این خلط رو توضیح داری باید جوری باشه که قابل تشخیص نباشه یا تشکیزی که خیلی مشکله یک روایت دیگر هم هست مال کلاه دوست کسی بوده که کلاه دوزی بی میگه ما درش انباه های کهانه قرار میدیم قاله احنی احب بلک هنس کردیم الان هم عرض کردیم او از جاهید که حکم به سنت ثابته بگو به اونها که پنبش کمانه از یا خرابه و الله نداره تعبیر به قشن حالا احساس میکنه مراد اینه که این کار نکردیه قشن حساب میشه یه رواید دیگه اینجا از ابن عبی جمهور در دورن روالی نهاره کرده که توزیان روشه افراده هنس کرده کتاب ضعیفه حالا توزیان خودش راغب هم بیان کرده ابن خالد قال نبی ها با این نامه ای رو که بهننده نوشته در شسر شسر از شطور خیله شطور از اد ابن خالد از مصادر اهل سنت خوندی حتی کامنتارو میشد داره داشت اینکه نداره داشت اون وقت اونجا خوندیم بی المسلم علی المسلم لا جا ولا خمسه برای قائنه خمسه نمون بحث باشه خبه به نظرم بود خبه من اگه اشتباه کرده باشم خبزه که از خباست خبه همی یعنی کوشیدگی پنهان به شد دیگه نه مریض باشه نه خباستی باشه و نه گرفتاری دنباله کشه غائله سختی از کلمه گون احماهای غیر کارهای غیر مناسب این جمله یه روایاتی بود که ما از مسادر متعدد بودیم چه از اصل اخر مطلب انصافا ثابت این سنت رسول الله حالا بین بقیه مواهب درباره غصب ان شاء الله فردا باز می کنیم الله علی و آله اصلا به بله راست می اینه یا آیه حامل آیه هاشمی این رسمش اینه که لا اوهب میگن لا یسله میگن یعنی اکره و میگن یکره و دالک میگن این رسمشون بوده یعنی اینجور مربوله هم حرام بوده. حرامه حرامه به سنت این شو همیشگی هم بوده تقریبا نه سعی این بوده سنیام اصطلاح بکارده نه لاتن قدسون نه لاتن قدسون نه لاتن قدسون نه لاتن قدسون دیگریه اصلا میگه در باب سنان پیغمبر قسمشون به این بوده که میبویفتن حرام حرام رو میگویفتن برای که خدا حرام شد حرام تنگیل بوده نازم کنش به سنیام هم اصطلاح بله خب موارده که بخواد کشف اگه چونت سنت پیغمبر نبوده قربونی اینا حرام نشه. اونا بعد حرام میشدن اون چی بود؟ اوقات مثلا در میگشت به دنیای تقوا شقاحت حساب میکردن گراجو. یه فقیه بوده از مجموعه ادلی من در مورد حرمت فقیه موده از باره کراح. است مثلا عدم حرمت. چرا؟ ما حرم اینجا هم وقت هست که اگه یک مطلب بوده اینجا به اثبات است اینا داشته. اونجا هم تعبیر ist bom dort